خب اون برادر که این فایل گذاشتن قادراتا میخوام بگن که این ننگ گریبانگیر ما شده. گریبانگیر ما نشده به این معنا که آمریکایی ها هیچ کشوری انتخاباتشون رو در واقع تهدید نکرده. در یک فضایی که فکر میکنن در اوج پیشرفتن مردمشون بیعتنان. ولی ما همه فشارهای جهانی برای اینه که انتخاباتمون رو کم رنگ کنن. و نوع فشارش هم به اینا تقریبا تونجی بهش میان روسی نوع مدلشون این هست که فشار رو روی طبقه ضعیف میارن با تحریم ها با فشارهایی که ایجاد میکنن یه مدل مدل های رنگین مدل های رنگین میرفت سراغ های پول دالز هم میذید ها از شمال تهران شروع شد ولی این مدل ها میاد فشار رو میروی تعقیب پایین یعنی میگه کاری بکنیم که بدنی مردمی یک نظام رها کنه خب این بدنی مردمی میگه همیشه در بدنی که پای کار و پای جنگ و پای مبارزه میسته چقدره اینکه که چهل درصد کسانی که حاضر شرایط رعی دادن هستن بیان و پای کار بیستن خیلی عرضش منده اصلا با سی درصد آمریکا قابل مقایسه نیست اونو اصلا مسئله نبرد و جنگ بود. اینجا واقعا پای نبرده. اینجا همه دنیا ایستاده که نظر ما بیایم. چه لرصت میگن از اون سنگم به باره داریم خیلی دیدید اگر دقت کرده باشید. تیپای عجیب و غریب میگفت به عشق رهبرم این عمق استراتوژیک کاره خیلی ارزشمنده. تحلیل ها رو باید این داره دقت کرد. اون برادر بزرگه ها که میگم که کوب رای نهاردن و متحری یعنی اینا میرن طرف کاری با اطلاعات باید صحبت کرد بخش حود مثلا 50 درصد از مردم معمولا در انتخابات ها شرکت میکنن دیگه انتخابات پرشور و با عظمتی مثل انتخابات سال 8 و هش 80 درصد شرکت میکنن ولی معمولا حدود 50 درصد مردم در انتخابات شرکت میکنن 40 درصد مردم امادن پای نیروه انگا لو این خیلی ارزشمنده یعنی 10 درصد در واقع حدود ده درصد رأی ندادن. این 10 درصد بخشیشون کسانی یعنی هستند که دل زدن نه اینکه اصلاحاتی باشن اگه با مردم برخورد داشتید دل زدن به خاطر فشار اقتصادی گرفتاری ها که پیش اومده خب اینا باید برطرف بشه ان اینا برمیگردن یه یعنی بخشیشون نه اصلاحاتی هن. واقعا اصلاحاتی هایی که پای کار باشن و اصلاحاتی باشن انقدر در کشور زیاد نیستن اساسا به همدالله به برکت وجود رهبری در کشور و نیروهای های کف خیابون نیروه های مردمی کف خیابون نیروهای های عمومی که داریم تو انقلاب احزاب تو ایران پانه گرفتن به همدالله و المنن چون احزاب پانه گرفتن ما حزبگرایی در کشورمون تقریبا نداریم و مردم 20 میلیون میرن به خاتمی رعی میدن همون اده میرن به احمد نجات رعی میدن چون اصلا حز مطرح نیست نمیشه به مردمان بگی تناقض انجام دادید اون مردمی که به خاتمی رعی دادن به خاتمی ذهن من شما رعی ندادن به خاتمی ذهن خودشون رعی دادن خاتمی ذهن اونها احمد نجات بود یعنی چی؟ یعنی اونا میگفتن خاتمی زده هاشمیست اگر کسی اون دوره قشنگ یادش باشه، واقعیت این بود ناطق نوری ادامه هاشمی است هرچی مردم توضیح میدادن که نه اینجوری نیست باورشون نمیشود سالها گذشت تا بفهمن که این خودش آدم هاشمیه لذا اونا بر علیه سرمایه‌داری بر علیه دشمنان عدالت قیام کردند در باره احمدنجاد هم همینطور دو در زن احمدنجاد مقابل هاشمی ایستاده بهش رایی داد اینا رو دقت کنیم در تحلیل کردم اساسا اصلاً اصلاً اصلاحاتی‌ها در کشور پایه‌ای نداشتن مردم مرزم به دیندارها رأی بدن حتی اونهایی که دیندار نیستن مگر اینکه یعنی ما خرابکاری کنیم مثل این کار دو سال آخر احمدی نژاد که تعمدا کاری کرد که رأی به اون طرف بره یا دوره هاشمی که به اسم دینداری اومد و متاسفانه جامعه مدرسین و همه پشت هاشمی وایسادن از هاشمی یه پیغمبری ساختن که پدر همه رو در آورد هر چی هم بزرگانی گفتن آقا این در مسیرش اشتباهه حمایت کلی رهبری از رئیس جمهور رو به منای خود هاشمی نگیرید. نشد. جایه مدرسین شما برید بیانیه‌ها ها جایه مدرسین در مدرس حمایت هاشمی رو من خودم یه بار با این کلیدواجه مرور کردم. این چند یه بار مرور کنید. مثلا نگاه در حالت پیغم من داره حرف میزنن. حالا من با مبالغه میگم. این باعث میشه مردم رو لچ کنن. برن به یک طرف دیگه رعی بدن. بس هر جو ما با صداقت با مردم رفتار کردیم مردم همراهی کردند یا علی خداحافظ شما